السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله و لرسوله و المؤمنين اشهد أنك قد أقمت الصلاة و أتيت الزكاة وأمرت بالمعن عن المنكر في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين رحمك الله حيا و او امام را بزرگ کرد همه عوامل در سرتاسر سر دنیای مادیات و استکبار می‌خواستن او را محو کنند به فراموشی بدهند کوچک کنند خدا او را حفظ کرد و بزرگ کرد و ماندگار و جاودان کرد علت همین بود این سه خصوصیت در امام وجود داشت اولا با اخلاص بود برای خود چیزی نمیخواست ثانیاً به خدای خود اعتماد داشت میدانست که کار هدف تحقق پیدا خواهد کرد به بندگان خدا هم اعتماد داشت سالساً زمان را و موقع را از دست نداد در لحظه لازم اقدام لازم سخن لازم اشاره لازم حرکت لازم را کرد اون انقلاب عظیمی اتفاق افتاد هنوز هم دشمنان این انقلاب از گیجی این انقلاب خارج نشدند